خوب. بحثی که میخواستم الان از کنم اینه که کمال چیست چون اخلاق شکوفایی کمال آقایان شکوفایی کمال خوش برخوردی خندرویی عمل به آداب و رسوم قول عمل به فرهنگ خب اگر وفید باشه اگر جمعی انسانی داشته باشه باشه خیلی معلول خوبیه معلول های هست، اما اخلاق قدیم نیست از کلم اخلاق بسم الله الرحمن رحیم خودت چیزی با واقعه چه اعتباد این اگر اصلاح نشود اصلا خوش برخوردی با مردم معلوم رو سوداگری خواهد بود چون در اخلاق آقایان باید از سوداگری بالاتر رد بده نیستوش بده بستان که شروع شد اخلاق و وجدان آزاد از پنگره رفت محبت میکنم محبت ببینم خوش برخوردی میکنم خوش برخوردی ببینم من همون جامم که گفت درغم با دل خونی لبه هنام بیار نه خند درانی فقط بخندن نه هم که روحی را شاد کنی بلو بر تو پرخاشم بکنن مسئله باید به انگاه برسه نه باید مسئله را سکی بروزار کرد توجه میترمایید این چیکه را این ما دامی که از سوداگری نره نه اخناق نیست چنان که اگر وجدان آزادانه با حیثیت مردم کرامت مردم را کرامت مرمداد یک نشانه ویجدان آزاد این آقا اخلاق نیست خب بر برمیخنده که تا بخنده که متاسفانه اغلب بشر در بازار سوداگری عرضش ها میرود حرکت میکند و خب قده کمال از خودش بهتر میدوید این چجور تکامل بود است که عرشبت هنوز در خود این بجا آوردن اینکه ارزش را چه باید کرد در ارزش تجارت میکنه ارزش های بالای انسان